به خاطر دود آتش آسمان مانند آسمان دم غروب به نظر می رسید. از شیر آب نمی آمد. پس وقتی یاسوکو دست و صورتش را در چشم شست آدودگی ها پاک نشدند گفت اثر باران سیاه است که بر پوستش چسبیده است پودر زغال نبود جوهر سیاه هم نبود سیاهی ناشناختهی بود بلا فاصله برای دیدار و احوالپرسی از آقای نجیمار راه افتادم. بر دستهای او هم که اجری زیادی برای رفتن داشت آثار باران سیاه باقی مانده بود. پرسیدم یعنی گاز سمی بود؟ نه، گاز سمی نبود. در حالی که قضا و دفترچه یادداشتش را در کول پشتی قرار می داد این را گفت. گاز سمی نیست. به نظر می رسد دود سیاه انفجار در آسمان، و با ذرات باران قاطی شده و باریدند. بیشتر باران سیاه در غرب هیروشیما باریده. همین الان با افراد بخش بهداشت شهرداری صحبت کردم این را گفتند. ظاهرا برای بدن ضرری ندارد. فکر کردم حالا که آدمهای بخش بهداشت این را میگویند پس مشکلی نیست. با توجه به حرفهای آقای نجیما، بدون شک آتش تا شهرک سندا هم گسترش می یافت. اندکی قبل از اینکه به خانه برگردم آقای ناجیما برای فرار با قایق به میازو با عجله به پایین دست رودخانه در محل پال میوکی رفت. ظاهرا به قایقران گفت منتظر بماند و بعد برگشت. شاید چون ما سخت درگیر آماده کردن مقدمات ترک آنجا بودیم، گفت اگر میخواهید به سمت اوجینا فرار کنید، میتوانید با من سوار قایق شوید. بسیار عالی. با خوشحالی زیاد این را گفتم. به هر حال این اطراف خواهد سوخت. از طرفی لازم است برای کار مهم شرکت خیلی فوری با شعبه حمل و نقل اوجینا تماس بگیرم. می توانید همسرم و را هم سوار کنید. آقای ناجیما راحت پذیرفتند و گفتند زمین ورزش دانشگاه امن است. اما به هر حال این اطراف خواهد سوخت. با استناد به حرفهای آقای ناجیما، همسر آقای دوئی و همسر آقای یاشیمورا هم به خانه برگشته و بلا فاصله در زمین ورزش پناه گرفته بودند. به نظر می رسید فقط همسر آقای میاچی بعد از برگشتن به خانه نامه شوهرش را دیده و نزد اقوامش در شهرک شیجی ما رفته. مثل همیشه از هواس جمعی آقای ناجیما تعجب کردم. وقتی قرار شد سوار قایق شویم، با سر حال آمدم. به خانه برگشتم و با صدای بلند گفتم: با قایق برای مدتی به اوجینا پناه میبریم. لطف کردند و قرار شد سوار قایق آقای نجیما شویم. هم شیگکو و هم همیاسوکا بسیار خوشحال شدند. ما همراه آقای ناجیما شهرک سندارا را پشت سر گذاشتیم. بالا دست ساحل رودخانه را به سمت پایین دست در محل پل میوکی پیاده رفتیم. اما قایق دیده نمیشد. چی شده؟ آقای ناجیما سردرگم گفت. با توجه به موجها نمی تواند به بالا دست رودخانه رفته باشد. شاید کمی پایین تر رفته باشد. بهتر از کمی پایین تر برویم. آن قایق چککانی است به قایقی در پایین دست اشاره کردم. نه فرق دارد. آن قایق مخصوص حمله آب آشامیدنی است. قایق میازو به سبک ژاپنی و دو نفره هستند. قایق ما کیوشین ما رو نام دارد. یعنی رفته است. آقای ناجیما تونتون شروع به حرکت کرد. ما پشت سر آقای ناجیما راه افتادیم. در خیابان پایین دست رودخانه در بلوک 9 و ده. با حرکت به سمت غرب زاویه انحراف خانه‌ها رفته رفته کمتر می‌شد خرابی صفال های سقف و در و پنجره های شیشه شیشه‌ای با میزان انحراف ساختمان ها نسبت مستقیم نداشت سقف خانههایی هم که بنای بزرگی داشتند به شدت صدمه دیده بود سقف بعضی خانه‌ها هم سوراخ شده بود به نظر می‌رسید غرور آقای ناجیما جریه دار شده کاملا ساکت بود. اما ناگهان انگار چیزی به یاد آورده باشد گفت گرفتار شدیم این و ادامه داد واقعا متاسفم اشتباه بزرگی بود آن هم حالا بالای ساحل رودخانه آوارگان زیادی حرکت می کردند چون آقای ناجیما با گام های سریع راه میرفت گلویم خشک شد پایم درد گرفت و دیگر نمی توانستم راه بروم بخچه پشت شیگکو به نظر میرسید رفته رفته سنگین تر می شود و او با تحمل سنگینی آن راه می کوله پشتی من هم سنگین شده بود پشتی یاسوکو هم سنگین به نظر می رسید مذرت میخوام آقای ناجیما از نفس افتادیم این را گفتم و ایستادم آقای ناجیما هم ایستاد و با چهره حاکی از احساس گناه به سختی گفت ببخشید واقعا واقعا معذرت می و وسط این آشوب شما را با این بار گرفتار کردم اما خب اینجوری شد نه مسئله نیست شیگه که گفت. اما آقای ناجیما شما رو به راه هستید؟ نه چون ظاهرم وز خیلی خراب است، من سریعتر میروم من را ببخشید همگی سلامت باشید آقای ناجیما مدتی دستش را روی پارشه زده حملات هوایی گذاشت بعد کاملا تغییر جهت داد به تندی دور شد و رفت به عنوان دانشمندی با اطلاعات همه جانبه در محله ما و نیز شخصی با اعتماد به نفس که همیشه تمام جوانب را در نظر میگیرد، چنین روشی برای جدایی در این زمان کاری بسیار عجیب بود گلویم می با باتری را از کول پشتی در و آب نوشیدم وقتی آقای ناجیما از دید خارج شد کول پشتی را به پشت انداختم و به منظور تخمین زدن روحیه شیگه گفتم اما به لطف آقای نوجیما تصمیم جدی گرفتیم به اوجینا فرار کنیم. حالا این تصمیم به هر چیزی مقدم است. هر کار دیگری را باید به بعد موکول می کردیم. حالا بهتر بود در مقابل آتش هیروشیما که شعل ور پیش می آمد، به جایی دور رفته و برای مدتی منتظر می مندیم. تمامی شیشه های شعبه حمل و نقل ژاپن در اوجینا شکسته بود آقای ساگیمورا رئیس شعبه درباره وضعیت فعلی کارخانه نخ ژاپن در فروعه پرسیدند. جواب دادم امروز از میانه راه شرکت برگشتم پس چیزی نمیدانم. به اجبار درباره وضعیت خیابان‌های شهر هم توضیحاتی دادم اما نتوانستم درباره کلشان اظهار نظر کنم. وقتی صحبت پرتاب برج قلعه هیروشیما را به مسافت یک شهرک که از آقای میاچی شنیده بودم به زبان آوردم رئیس شعبه گفت بله برج اما خودش را نگه داشت و چیزی نگفت ابلاغنامه کارخانه فروئیچی به به و نقل ژاپن را به رئیس شعبه دادم و رسید آن را گرفتم دوسه مسئله مهرمانه هم به صورت شفاهی گفته شد با لطف رئیس شعبه هر سه نفر ما خوراکی شامل نیگیری برنج، ترشی تراب و تسکودنی خوردیم احساس میکردم غذای بسیار لذیذ است بعد از خوردن با رئیس خداحافظی کردیم بیرون آمدیم و سه نفری از مسیر ترانوا برگشتیم صف زخمیها یک ذره هم کمتر نشده بود حتی نسبت به صبح زخمیها زیادتر هم شده بودند شخصی استخوان كتوش دیده میشد فردی چوبی به یک پایش بسته بود و با تکیه بر خیزرانی راه میرفت زن و مردی کودکی کودکی خونآلود را بر الواری میکردند زنی موهایش در خون لخته شده بود دستها، صورت و شانهش هم خونین شده فقط و فقط دندان و چشم سفید بودند و این به چشم آمدند هر بار کسی نظر یا را به خود جلب می کرد می گفت، امه آن را ببین اما آن را ببین دیدن ندارند چاره نیست و نمی شود کاری کرد پس ساکت راحت را برو پایین را نگاه کن و برو چند بار این را به او گفتیم وقتی به پل میوکی برگشتیم، سمت خانه ما حتی یک خانه هم نبود. دود هنوز مشغول نوازش زمین به جهت شرق بود. فرار و پناه بردن به اوجینا بیدلیل دلیل نبود. با گذشتن از پلی بینام، به باغ کشاورزی دانشگاه وارد شدم و به سمت پشت خانه من حرکت کردم. شیگکو و یاسوکو خاموش دنبالم می آمدند. خانه ما نبود. در قسمتی که دود کند و آهسته جاری بود، جنگل درخت کافور در دور دست مثل همیشه تصویری پر گیاه و درخت را نشان میداد. مقابل این چشمانداز نزدیک درختان بید مجنون در ساحل رودخانه رشته های سیم مانند سیاهی را آویزان کرده بودند چند بار به سمت خانه خودمان که ناپدید شده بود برگشتم. در واقع هفت یا هشت دفعه. محصولات باغ، سوخته و ریغشان درآمد. تیرهای تلگراف گوشه شالیزار تا نصفه سوخته بود و مانند شمعی بزرگ شعالی به اندازه سی سانتیمتر سرشان می و دود می کرد. گهگاه که ناگهان باد داغ برمیخواست شعلهها صدای خفیف هوهو می دادند و چوبهای زغال شده ی خانه ما سرخ می شدند. همزمان دود برمیخواست و با باد پراکنده می شد. امه امشب کجا می یا سوکو پرسید، شیگه که جواب نداد؟ من گفتم، جز رفتم به شرکت چاره دیگری نیست. اگر نتوانیم به شرکت برویم، باید در جایی مثل کنار رودخانه شب را به صبح برسانیم. جز این چاره ای نیست. در عرض شالیزارها کنار رودخانه راه افتادیم. نزدیک حیات دوستان سندا که بالاتر از ساحل رودخانه بود، اسب نری افتاده و چهار پایش دراز بود. شکم بزرگ غیر طبیعیاش که سوخته و چروکیده شده بود. گاهی بالا می آمد و دوباره به شکل سابق برمیگشت. به نظر می رسید زنده است و نفس میکشد. وقتی به حیات مدرسه وارد شدیم، در تانکر آتش نشانی آب بود. حولم را خیز کردم تا وقتی دود بلند شد، دهان و بینیم را با آن بپوشانم. با وسواس، به کتاحترین راه ممکن برای رسیدن به شرکت در فروی چی اندیشیدم بعد راهی بزرگ راهی شدیم که از پل هیجیاما تا پل تاکانو کشیده شده بود. فروشگاه بزرگ فکویا، دفتر روزنامه چوگوکو، شعبه بانک ژاپن دفتر مرکزی شرکت توصیه برق چوگوکو، ساختمان شهرداری و غیره، وقتی دود با باد پخش میشد نمایان میشدند. از پنجره های آنها دود بیرون میزد. باد که تغییر جهت می داد، باز از پنجره سمت دیگر دود نچندان پرقدرتی خارج می شد. علاوه بر آن چهارچوب های پنجره های بتونی کنده شده بود و از بعضی هم هنوز دود بیرون می‌آمد. باد نسبتاً نسبتا شدیدی وزید. دودها رقیق تر شدند و توانستم خطوط تراموا را ببینم. سایه مهو افراد را هم. فکر می‌کردم به زودی تا دور دست را هم خواهم دید. اما بلافاصله خود ما هم در دود فرو رفتیم به شکلی که باید دهان و چشم را با حوله می پوشندیم. حدود نیم کیلومتر که رفتیم، رطوبت حوله کاملا از بین رفت. وقتی با دود محاصره می شدیم، وزا خطرناک میشد و نمی توانستیم پیش برویم. اگر به اشتباه زغال گرگرفته ای را که روی زمین ریخته بود لگت میکردیم میسوختیم. راه نروید، خطرناک است. با صدای بلند آنها را متوقف می و خودم هم می ایستادم. منتظر پخ شدن دود می شدیم و وقتی دیدی به دست می آوردیم با قدم سریع حرکت می کردیم. شاید زمان توقف بیش از زمان حرکت بود. یا و فریاد زد امو پایش به چیزی گیر کرد و به جلو خم شد. منتظر پخ شدن دود شدم و بعد نگاه کردم. ای بود که بچه مردهش را بغل داشت جلو ایستادم. و در حالی که دقت زیادی به سیاهی های مقابلم داشتم پیش رفتیم با این همه چند بار پایم به جنازه‌ها ها گرفت و دستهایم به آسفالت داغ رسید یکبار بار کفشم به جنازه نیم سوخته گیر کرد که استخوان‌های پا و کمرش تا شعاع یک متری در چهار طرف پخش شده بود بی اختیار آه کشیدم و از ترس کاملا فلج شدم آسفالت که حرارت نرمش کرده بود به کف کفش می چسبید و اجازه نمیداد پا به راحتی حرکت کند دهها قسمت چنین وضعی داشتند با اینکه بند کفشم را محکم کردم باز هم کفش از پایم در آمد هر ثانیه و هر لحظه بسیار حیاتی بود پوشیدن کفش زمان می برد بنابراین این کار عصبانی هم می کرد این اتفاق افتاد باد کم کم فروکش کرد و دود ساکن پس نفس کشیدن هم سختتر شد بودن با همسر و دختر برادر او در چون این هوای گرمی شاید بی بود اطمینانی نداشتم به اینکه که بتوانم فراریشان دهم و چون کسانی هم بودند که از رو به رومان می آمدند، اعتقاد نصف و نیمه پیدا کردم که شاید باید از طرف دیگر می رفتیم به خاطر عقل ناقص من بود که یاسوکو برای فرار از خدمت اجباری به هیروشیما آمد نمی توانستم مسئله یاسوکو را همسرم ببینم. وقتی در دود محاصره می شدیم و توقف می کردیم دود و حرارت بدن را اذیت می کرد اگر جهت باد تغییر نمی کرد نفس کشیدن سخت می شد و نمی شد دیگر تحمل کرد وقتی یاسوکو از نفس تنگی جیغ کشید فریاد زدم تکان نخورید اگر حرکت کنید میروید وسط آتش یک قدم تا جهنم است می سوزید و می میرید با زحمت به پل تاکانو رسیدیم از آنجا تا شمال شرقی همه جا سوخته و دود رقیق شده بود کوه فوتابا در سمت راستمان به شکل محوی دیده می شد عروس دریایی دیگر دیده نمیشد. هی hey, کمک کنید! زنده ایم! زنده ایم! من به وضوح فریاد زدم دو نفر دیگر تحلیل رفته و ساکت بودند هر دو چشمانشان قرمز شده بود انگار خون به آنها دویده شد. کاملا قرمز شده بودند اما نمیشد استراحت کنیم من جلو قرار گرفتم و باز رفتیم چشمانداز ما محدود به دشتی از زغال چوب بود کنده های بیشمار سوخت دود می کردند و دودهای رقیق به نرمی بالا می رفتند. در شمال شرق اطراف شهرک یوکاگاوا هنوز آتش سوزی بزرگی در جریان بود و شعله های آتش تا اوج آسمان بالا می ایزد یا هاکوشیما دیگر چیزی جز دیواری سنگی نبود بیشتر درختان کافور معبد ککوتای با تنی به قطر دو متر باقی مانده بودند اما سه اصله از آنها ریشه کن شده بر زمین افتاده و کاملا سوخته بودند در حالی که شکل خود را حفظ کرده به زغال تبدیل شده و ریشه های آنها در هوا بود کنار اینها سنگ های یاد بوده 47 رونین رو به جنوب همه بر خاک افتاده بود. در سمت دیگر سنگ ها و چوب های مغبری خاندان آسانو هم واژگون شده بر زمین افتاده بود و شکل متلاشی شده ای پیدا کرده بود. گفته میشد عمر این درختان کافور بیش از هزار سال است اما امروز پایان این عمر هزار ساله بود. اینجا هم آسفالت به ته کفش میچسبید و راه رفتن سخت بود سرب کابل های برق ذوب شده قطره قطره بر زمین ریخته بود و در راه ردیفی از دانه های سربی سفید رنگ ادامه داشت در خطوط ترانوا تیرهای آهنی سیم های برق به سمت خطوط کج و سیم ها پاره شده و آویزان بودند. می ترسیدم نکند برق و شود پس به آنها نزدیک نشدیم. جنازه های افتاده در مسیر تا حدی کم شده بودند شکل قرار گرفتن جنازه ها بسیار متفاوت بود اما نکته مشترک بیشترشان این بود که با صورت به زمین افتاده بودند بیش از هشتاد درصد جنازه ها چون وضعی داشتند یک مورد استثنازن و مردی بودند که نزدیک ایستگاه هاکوشیما دو پایشان را کشیده زانویشان را زاویه دار کرده و دستهایشان را مورب قرار داده بودند آنها تبدیل به جنازه های سیاه و سوختهای شده بودند که حتی یک نخ هم تنشان نبود زیر کفل هردوشان هم مقداری مطفوع پن شده بود این وظ چیزی بود که هیچ جای دیگر ندیدم موهای سر و تنشان سوخته و از بین رفته بود تنها با توجه به سینههایشان میشد زن و مرد بودنشان را از هم تشخیص داد نمی‌توانستم بفهمم چرا به این شکل غریب درآمدند شیگکو و یاسوکو سری و بدون اینکه به این جنازه‌ها نگاه کنند رد شدند جنازه هایی که با صورت بر زمین افتاده بودند کماکان دیده میشدند اگر با توجه تجربیاتم در فرار و پناه گرفتن بیاندیشم شکی نبود که آنها در حرارت و دود محاصره شده در این وضع با صورت به زمین خورده همانطور هم نیرویشان را از دست داده و خفه شده بودند شاید ما هم درست قبل این مرحله سرگردان بودیم